گراند دوستان و سلامون و احترامون بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز عرضی سلام و احترام خدمت فرد فرد باز هم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان خدمت شما قرار داریم و در بخش سخنی اوریان امروز باز هم دفتر اخبار افغانستان باز می داریم در افغانستان می‌گذره. به هر حال افغانستان در طول سال اشغال افغانستان البته به ایمان منوال با پیش میره و در حقیقت خود ما فکر میکنم ناتو مسئولیت سلح در افغانستان داره چون اینا افغانستان اشغال کرده و جورج دبلیو بوش در وقت میگفت که اگر ما زد ترور و تروریسم در هر بخش جهان بر سرکوبی از می و اگر پاکستان هم کاری نکنه و دوران حجر اونا را خواهیم برد و خاک و دود خواهیم ساخت ولی نمیدانم دانم کجا هستن اونا آنچه پالیسی خارجی ایالات متحده امریکا در, در رابطه یا در برابر پاکستان بود و ای قرارداد امنیتی که دستخط گردیده با ایالات متحده امریکا ازرت سیب هم شاهد بودن و امی ریشواله ها هر کدام در اونجا موجود بودن گردن خودم بس بستن اون و میالت افغانستان کشانیده شده و روزی نیست که در اونجا خون افغان به ازارهاتن نمیرزه یک حکومت فاسده میالی یک هایتی از معصی ملال متحد برای افغانستان و ری فساد در امور اداری افغانستان فرستاده شده و اونا با سرتکانی دارن از فساد اداری اما توی مناطقی که یکی پای دیگر به دست طالب می مگر در اونجا قرارگاه های نیزانی چلونو کشور ابرقدرت تقریبا جهان افتاده و اونا در برابر چند نفر طالب زد اقل و اونا قدم رنجه کنه امروز پلیس و اسکر و اردوی افغانستان در برابر طالبان خمیر میشن اونا کجا هستن جایی که از حکومت افغانستان شما گله دارین شما افغانان باید از دارای حکومت افغانستان که اونا این مشنی از اونا بوده معمولیتی از اونا که سرکوبی گو یا حراس افگانان استن اینا کسانی که از وطن خود دفاع میدارن اونا را حراس افغان میگن شوروی وقت اشرار میگفتن همه تو راست شما صدایتان را بلند کنین بگوین که وطنش غال است برباد است بدبخت میشه به دست یک چند تا دوز و قاتل و وطنف وزید کشور ما راستی به قهقرا میره میگه یاد طالب هستم و منافی ملی افغانستان نمیدانم منافی ملی افغانستان در کجا گریه خورده بعدا میریم سراغ سفر آقایون وزارت خارجه و یک نفر دوز به نام و مر زاخلوال و سفیر افغانستان بعد از چپاول دوزادوزی اختلاض فساد در امور داری افغانستان با میلیون ها دلار دودیعالی است در پاکستان در اون انجام شاید درمی مثل قاچاق و قراردادها او آدم خدا پیدا کرده که بره بدد زیر یعنی درختای تورنتوی کانادا سیبی طرف طرف برای یکهزار دلار امرار معاش داشت معشد داشت امروز سب صحب سیمصاحبه میلیون ها دلار شده حتی یک دو برادر خودم برده و میدوده او آدم هم اونجا نشسته یعنی جایی که همین های دوز و وطن فروش هستند در همین جلسات برای منافی افغانستان اونا حضور می رسانند برحال توجوب داری حمله هایی که گفته دم به دم شدت گرفتند و پیش جنگجویان طالب را های مرکز شهر بدون بال داشتند وزیر دفاع و وزیر بیکفایت رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، سخت از شما مردم فراگیره دارند، سخت مردم شکایت دارند. اگر تا دو ساعت دیگر نرازیید، فرار سقوط می‌رند. با این حال اطلاعاتی که این‌ها در صفحات اجتماعیشان پخش کردند، گونه بودند. و حتی دیده می شود که یکی از تصویرهایی که در صفحه سخنگوی وزارت امور در درباره حضور نیروهای کمکی در شهر فرا پخش شده است، در اصل از دو سال پیش بوده است. توجوب خبری بعدی. کشتگیری رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر وزیر انرژی و آب رئیس جمهور علی احمد عثمانی را که وابسته سیاسی سپیدار است ناکاره می و رئیس اجرایگه ویرا هرفعی و بهترین مدیر در این میان هنگام که فراه در آتش جنگ میسوزد رفتن رئیس جمهور سر قماندان و وزیر امور داخله با لوگر برای گشایش یک میروگاه برق نیست با انتقادهای سختی روبرو شده است آستاستا گبهی رسیده که حکومت حتی از هم دفاع کرده نتانه یک حالت بسیار دردناکی است ما هیچ خوش نیستیم یک مردم احساس مسئولیت نمی کنه. در اصوات خودی حکومت ناطو بگویم یا اطلاف ناتو در افغانستان یک جنگ داخلی گه برا انداختن طالب افغان است می خواهد باتن خود دفاع کنه در اونجا خبار خبری هم از محسیم داریم متاید داریم برای از یعبی فساد در افغانستان که گوید حکومت تا خرخر از فساد مملو است او خبر هست مگر مجاید صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن توله جن السلام علیکم زغدی فرالت گرم د دولت حکومت وای چې څو نفر یې ملکړی دیو موږ تر اخر دی نه نه ورز طالبان لږی چې با سو برته دا زوینه دغه حالت لږه تشریح په فارسی زبای وای څلګه ټول پیپوز بلی بلی بسم الله الرحمن الرحیم حالت در ولایت فرغا فرای چنين بود کې څو ورځې موالی قبل از چهار بجاید حملات گسترده بالای شهر فرا شد و آشد اول دوست های امنیتی گرد و بغل کمربندی مجاهدین برچیدن و بعدا داخل شهر شدن اول بیاست امنیتی ملی به اصلاح داره کاول را هدف قرار دادن که بعد از یک سهات جنگ بیاست امنیتی ملی و تصرف مجاهدین درامد همچنان سهات دیگر حوزه سه و صحات مختلف دیگر هم به تصرف مجاهدین در آمد در این زمین کتای مهم اداره کابل کشته شدند معاوین عم آمیر عمالی امنیت ملی شدیدن زخمه شد و همچنان آمیر حوزه سه کشته شد و دیگر هم کتای مهم کشته شدند بعض نیت حمله بیشار تسکی بالایی یک گلوی از ساکر کماندو ها که وجه رسیده بودن انجام شد تی بیشتر از سی تنه کشته و زخشی صافتر همچنان ساعت و سی و اکس اشاره دادیم به تصورت خود در آوت ما وقت و ویدیو ها و سانه ها رو همه پخش کردیم ما نشرتی طور دیم الحمدلله واجهت کردیم نفع مجازید بیش میره هکنون رابورای جدید مېرسي که شام بعد از نمازشام مروز ولس همو پنج هم سقوط کرده و همچنان قمانداني امنیه هم تصرف مجاهدین درآمده و ساعت وس در حالت تصفیه کاري است جنگ د ف مجاهدین به پیش میره و اکثر پحشا شهر فراه تصفیه شده و هنوزهم تصفیه کاري ما ادامه داره قومیده شده، فرار کرده، اداره فرار کابل در برگفره همه فرار کردن و منطقه رو ترکدن مرده در منطقه از زخنه هایشان هم کسیدن وحیت برای دشمن بسیار وقتی و زیرده اینجا به مشکلات مردم بی است که درست است یک چند تا و پولیس که در برابر از در جنگ قرار دارن خاریجیا خود درمون بیسای نظامی خود هستند اوعی میه بالا شما شاید حمله کنه و بعضی تیرا بی پیلوت ها هم همستون مگر اهالی منطقه کسای ملکی زیاد کشته میشه تا اطفال هم میگن دی رابطه خود چی داریم بله مقامات که جنگ بالای تأسیسات نظامی شاید این روز هم دشمن چون بسیار ورخطا بود کوشش میکرد در عین حال تبعات رم برای این باز مدون در ورخطا بشه و تبلیغاتی سوره می‌مجهزین کردن که دویا مجهزین به آرکه می‌بینند، آسمانی رسانه می‌آخود اینا خواست عملمی کنند. چون این چنین با ما برها ایتمنان دادیم، مصاری سی نزدیک هم مجهزین ما با ما توم ایتمنان دادیم، رسانه ها هم ما کردیم پیام دادیم مردم مردمی شعری و همچنان یا حتی خسایی که در دوایی ملکی خلی کوبری فعال بودن آنها باعث احیای سیاراتی و در خانه‌های خود به تاكيد ام ام بي اختيار طرف خانه های خود داخل بمانند و مردمی این ما و است که ان شاء الله با يك كافي حافظه طرف مردم باید مطمئن باشند صرف به خاطر که جنگ از هویت نمصای دستخانه های خود داخل بمانند امروز تا وضعیت نرمال شود مردم موکی و حتی و تصايت بر ادوی اداره کابل در بخش موکی کار میکنند به آنها هیچ آخری نمیرسه ایت نامتیم ما که برخود داخل خانه خود بومانند عداد ما معلوم است عداد و مجدعای نظامی است حتی افراد نظامی دشمن هم اگر صرف از پروپشاری خود و از جنگ و از احفتر بزنیم بگذار از ما برشان اطمینان داده میشه زندگیشان نجات داده میشه ما طرف دار کشتار هیچ کس نیستم ولی این مجبوری ما که متعدد بعضی اتضاد از افغانهاد روی مناطقی آمیتوی ها روی غیلی ما می و بیشنند با مردم ترا و همه احالی شهر ترا ما اتمنان میکن از طریق <متصفيق> شما و دیگر طریق شما و از طریق نابی خود هم از هم با اتمنان های اتمنان های شده باز هم تاکید نکنند که هیچکس کس خطا نباشند مردم در سراهای متهم بمان ان شاء الله هیچ آسیبی به کسی نمیرسه ما مردم مقصودیم مان از شرشان عزتشان عزت ما از ما به خاطر مافیات دارها اثر خدا هم قدرت با تمام کوشش خود اظهر نجات میدیم عادت ما فقط خرداب نظامی است که ان شاء الله پس امنیت به شهر فراهم جواد صاحب شما مناطق میگیرین علتی از چی است بلیزی او را به شما نمیتونید دائم نگه دارید ایچ طور اصحاب این پلان شما در این رابطه چی خواد بود؟ بله، من بکتم که هر وجب و هر بخش از خواست ما برای ما احنایت را و ما در صداد نجاتش هستیم شهرهای کشورم انشاءالله پی هم قاد بیستیم یکی خواستهای ناتو و همکارهای آنها است و جبه است که آنها عربته ایچی برش از کشوری مارا شاید نخواهند که مستطرک ما باشه ما و یکی هم ش اینا میخوان کشورشان از جواب باشه و کوشش میکنن که هر بخشی از کشورهای کشورها رهایی ببرن هم که همچنان شهرهای کشور هم یکی از اعضا ما است علی ما کوشش میکنیم در شهرها عملات خود رو بیشتر به و قسمت انجام بدیم تو مردم عالی و مردم عام ضرر زیاد نرسه و کوشش بکنیم که مردم تقدیر نشون از پر فراهم در ما کوشش میکنیم ما این رباهای را به نام این که مردم حاسبې نه و ضربات کوزیده کوبیندې به دشمن وارد شو همچنان تستیحات از دشمن بزده همچنان روحیهیې دشمن شکسته و هنوزام تغیل شون و مجاهدین به خاطر سفرف سرا و همچنان ب خاطرې باز نګهداشتې پرا تدابیر خود ره دارن انشاءلله مطمئن استیم به همکاري مردم و با اطمینان با همو نیرومندې مجاهدین و روحیهی آن ها به نسبت خداوند جلجل محافظت هم میپنیم با موجوده تیزی که نیوهای هوایی دارای امریکایی ها و همکارهایشان شاید تشاره های را وارد کنند ولی ما کوشش میکنیم که تکلیخ های خاصی را به کار ببریم هم از آنها خود را نجات بکیم و هم نموپن بارجمان های آنها را خیلی در دیگر جه ها که بیاثر سخته اینجا هم بیاثر بفازی میشوند موجاید تبصیرهایی را که از مردم می بلان گزاری طالبان و پیشروی طالبان از وس طالبان بالا است این دایرکتری از ای پاکستان است فرض کنیم شاید ایران باشد باید اول یادآور شیم که الحمدلله درنده جنگ افغان ها هستند به خاطر که چندین چیزی در افغان ها خصوصا است که افغان ها بر آنها هستند اول ایمان هستند خالص مؤثر در طرف بود جنگ چون مسلمان هستند با ایمان راست خود تاوانسان که بودا علیه مباکل بسیار خوب جنگن نساله های جنگ های انگلیس و علیه جوابی شوروی هم دارد و علمه های را هم افتر سال که بسیار و مکانت ها فانها و جنگیز های برندهی ميزان اصلا قرره من مورده دی که همایت های خارجی را اطحام میدرد قرره بگوین که امروز شما فیلیب های را که در سراب بخشک مشاهده بکن یک کدام لباس نظامی خاص ندارد کدام همو علامه وجود نداره خان خاص کدام سود بسیار باشه که با تاکتیک و رویه و بیشتر امور و وسایل پیشرفته اومده باشه afganai adi بچه بچه‌ها که خود جنگ نکنه voilà با دستار و لباس afgani و سمای خود جنگ میکنه ولی با روشی بسیار عالی یمتی اپونتی رندا بوید ما پیوند بکن به کشورهایې دیگر اگر همچنین دشمن تبلیغات ره مې کنه ولې افغانها مې دانن استخارات از افغانها ت دور امریکا کشورهای جهان ستا د ببر محالې در حالت زبون و زلت بدونې نصت خداوند او بسرو خود چېز اتهامات بېجا است ترلوات است یاد کښې شده و مسله دوه هم دشمن تجهیز اس دشمن تقویت اس دشمن و وسایل خوب وسایل دشمن پیشما مې ما بشان بیست و چار ساعت وخت مې در امریکا داره افغانستان یا ره مېراندې مي وسایط یا تیار انا م وسایل کښې استعمال مې کنن ما مې ما چلنج مې ولی ما در مقابل تدبیعات ما طبیعی است بیشار قویلی است چهار چیزایی کشتایی در ولی بایدام یاداور نیشن که ایمت آنی رو جایی بیشار آنی ایمان و حقودن موقف ما ما حکومت کرده که علیه دشمن با مطانس بگیم و برنده مجرم شایی مناقذلید شاید آنها نظام با شرم و رسویی بجار شاید شما جانب مقابل خسنان اردوی افغانستان که با شما می جنگن برای از اونای تو استخبارات داریم که برسانیم که شما برادر ماستین احالی همی کشور هستین وطن اشغال شده بر دگاه جنگ نکنین در برابر ما اگر با ما بیاین برادر ماستین شما مسون هستین سرتان مسون است فامیلتان طبعاً مردم ما می که نیروهی امنیتی که در ایزاره کابل فعال هم اطمان هستن بناها کستن بیشن نک همدنه و یتیم میمانه بیول میمانه ما که جنګ می کونېم مجبوریتې ما کې دګر هېچ هې اپشلې دره اختیارې خود ندارم چون فریزه ماچې کوفار را برانیم و هم موانع کې ده پیشوی و بهخاطر پقای کوفار ده اجاهز باید سرداریم از ان او موانع اگر هر کس باش ما مجبور کار ره بکونم ارزدن سر ولې جانب مقابل کښې نیروهای امریکي اداره کابل ست انها افسرهای مثلا همو پیشه که وصری پیشه خوده میگه لان مواردی قدیه برای خانواده خود در غم و در مصیبت مصالمه دادن میتونن که راه دیگه را برای پیدا کردن ریس خود پیدا بکنن و میتونن یه درک بکنن از علما بپرسن از مذهب امای که خود کتاب سنت صفای که حق میدونن از اونها مشوره بگیرن که چرا در راه باث میجنگن و علیه ما کشتن انسان اینطور که قبل خودشون اعتراف میکنن که بیشتر از 70 که فلوج اخیرش لایق قابلیت تعصبه اول هر پیام با که شما برادری ما هستین شما فریب خورده این کوشش می‌کنیم که انتخاب به خاطر پیدا کردن خود به خاطر و خود این راهی نیست که شما مت آمریکا رو نکنین خدمتی که برای دین علی مسلمان خود در رای باطن کوشته میشين اخرت میشه پرباز مېشه بسیار در است ما دعوت بکه کې بیاین ما بر باز است اګر اسلحه خود را با ما یکجا شوند، برادر ما ما از هر قدر از هر کسې قدر بسیار سر خش پیدا روز قبل ما یک راتوره داشتیم در دا ولایت باطل در ولسوالي قادس پانزده تن از قماندانای مهمې رای کابل که تبا هفده سال قبل یعنې هفده سال بودن با 500 نفری نظامی خود به عله ما ولی بدن ولې همه حق در کردن ب جلسه بسیار کلان ما از آنها استقبال کردیم از صحه خود ره هم اوردن زندګي ارام باعدت خود را کردن ما هم بارای شان افتخار مې هم هر فرد از جا خوش بود قلبا اساسې خوشی مې و شما میدانید یک جا یک هفتر نظامي به ما تسلیم میشه شه ا ګردنش از ګل پر مېشه از استقبال پور مېشه ما و برابر یک اسکر عادي که استقبال مې اولت اوره تشویق و قلبا خوش که یک خانواده از مصیبت بد شود ا یک انسان یک مسلمان اخرتش نجات داده شده از مرگی بد خدای نخواسته ما بازم هم دعوت که که در اداره کابل هستند د هر ولایت کښې هاستن هر به هر منطقهې کښې رب دارم برادرای ما هستند نور چشم ما هستند باید از راه باطل برگردن حق را درس بکنن ما هر چه اومده است این بانهای استفاده کنیم و از آنها قدردانی بکنیم با آنها خیلی و صلاح زندگی آرام خود را آراقم کنیم زندگی شان را تضمین کنیم ما برو و عزت آنها نه کنیم این سربان اوثی منیرانه و لوجه حتی شود در ان ظرف صالح خود پوششان از این انتقام کرد و برادری مؤثر تعهد می گذاریم همه تلاشی که داریم ما تلاش می که ما علیه که اینجا اگر فرض کنیم یکی بیا بر شما تسلیم شود گلوی نار تا گردن اسو من دوزین بازو رو خو اله میتیم که میره خانی خود یا و رو میگیم که بیا بیا در خیال جنگ کو با همراه مازد اشغال میو اختیار اختیار خود داره ولی اگر خودش بخواد ما خودی مسئولیت خود دیهات بکنم یعنی بر شما کمک ولی ما خوش که اونها که تنظیم کردند در مقابل در مقابلی ما مقابل هم اند شدهن خانواده شدن تا زندگی آرام زندگی خود ما یک قدرت تا نیمه برم همتیمه قانون داشم میکنیم اما رو قواعد میکنیم، میتونیم مفاد داریم میتونیم تحت به او رسیده نارضا و کمک کنیم زمینه آرام و پروژه گسترش بشه بله سلام علیکم سر فکر سوال سوال دارم اول ترف ما پروموت خدارا خدا میخه برای ام جواد میکنم گیرم هم کامیاب شدن خطاب شد بله همین امریکا ما از افغانستان برامد شبری رو از بین بردن عبد الله بین بردن امی کسی این ها درست میارن یا به صفت امیر خود یا به صفت رئیس جمهور افانسان اگلو سلم بیوگرافیه دا برای ما بگیم که موادم کی است شنیدن؟ شنیدن خوالا شنیدن باید پاسخ داد که اول خود ما بازم تأکید میکنم که ما با بسیار چیز ناکیز چیز گذاره خود رو پیش میبریم این رو که دفترا جنگ کردیم خیش اصلیه های مادره نوم پیشتفته د لباس شختی خودی ما را در تن داشتیم و چطرک فلسپیکی را در پای داشتیم فرا را الحمدلله فتح کردم در مقابل ما هر را همه چیزا وجود داشت ولی بعد از فتح فرا از آزارها مرمی و ازتحا و مهمات با بسیم ما فتانگهای دستم دستانا بعد کردن با یک صاد جنگ ماهن شده مصطحاق کفایت می کنیم ما ازی طریق امرار دماج هم می پیش و مبارده خودم پیش گفتای های دو که گفتن کی بازنه یا حتی متر تشررک میکنن و بیوگرافی گرافی بوده خودشان بیایان در افغانستان خف که افغان هستند در داخل کشور از ناح بیگرافی رق <تصفيق> ما را انشاالله میفاامند و دیگری که ما نظام را میاززم که هم افغان ها تی سطلی او علیه السلام علیکم بله سوال برادر را السلام سلام و علیکم سلام می ما هم طرف داری که جنگ در افغانستان نباشه و جنگ به ما تحمیل شده و شما یاد دارون که مدت قبل ما هم زمانی که ترامپ حاکم شد ما برشان نامه نوشتیم و هم وقتهای افغانستان بر شان تشریه کردن تا چون نوست در سیاست باید باریکی های موضوع افغانستان را بداند همچنان باز چون خودش موضوگیری نظامی کرد و تراتیجی جنگی خود را اعلان کرد ما بعدا با مردم و ملت امریکا هم نامه نوشت این فعانها بودانند که وزیت به خودم سو بیشت بله سلام علیکم بله سوال برادر رزیزم سلام علیکم سلام میگم قبل یک سوال سبل قبل مقت شد ما یه فعام امروز تکمیل کنم با باید بگن که در مورد امریکا و ترامپ گفتن اگر آنها بخواین موضوع ونسان حل شوو ما برشان قیام داده ایم ولی آنها تا باز کدام چراغ روشن نکرده البته با بشاری با جنگ و با وحشت دارن از موضوع مشاورات ایران بمورد ما رو زیاد کردن نظامی خود افغانستان کی وظیفه برنتی آمریکا نمیتر ما مجبور هستیم از کشور و حریم خود دفاع در موترحات دفاعی قرار داریم و جنگ انتخابمانی ما تحلیل شده و ما مبارزه و جهاد نکنیم. ما در مقابل سوال ازید برادر می‌خوایم که اخبار ما, ما ده ده ده کی. کی و عمل ما انشاءالله یکی است. اگر شما به تاریخ جنگهام مراجعه بکنید، جنگی که ما در که هدی سوریه در تینیک ملیون میلیون شهید شد. یک اکنون که جنگ در عراق و سوریه در چیزچیز ما شما تیر می‌شد و ها انسان شهید شده و شهرها به و ایران مبدل شده. شما ای که این شهرها که به و ایران مبدل مثلا و قط و کوبانی و شهرای دیگری اوزو کشورها را شما هم و تصاویر شدیدن که ایا هم بشریت مروز هم بشر مدرن که شما در کانادا ششتین شاید فکر بکن کې همونها بسیار مدرن هستن حقوق بشر و انسان ناهم می زندگی زند رم اهمیت میتن اګر و تصاویرو و همو طباهي شهرها شما ببینن شما می که کې هس وارف سرعون و هامان و و ظالمای دیگری که در تاریخ بشریت تیر شدهان هنه غربی ها هستند، هنه وحشی های مستقبل هستند که مردم می میکشند و مردم را بردختی دوچار میسازند ما در افغانستان، در جنگ افغانستان اگر شما ایره مطارعه بکنین در افدس سال قبل که ما از مراق و سوریه که جنگ ما طولانی است بسیار با مردم ملکی هم خسیات کرده ایم هم عملات خود خسمی به پیش بوزه جنگ بالای ما طولانی شده، جنگ بالای ما تحمیل شده و زیاد شده. تکالیف ما زیاده ولی ما جنگی را از طرف وحشت نبوده مگر ما میتانید به این شهر کابل در روز ده انتجار خیر انجام بکنید این چند روز کابل مثل ویران شد و در لما شهر از ساک ویران شده این ما میتانید شهر آساند بس مشوان به بجرد شاید بایستان معلوم باشد ما نیرو را و اگر گفت را و مراملی ها میتانید که که ما نمی‌کنیم مردمان نمی‌خواهیم خودش معلوم معلوم که ما با این زندگی بسیار بیشتر چابه کنیم. وانی استثنایات وجود داره چون جنگ فیل، جنگ شمشیر و کار و چاقو نیست بلکه جنگ مواد انتشاری است. وقت بیکیاتی صورت یا گای وقت مثلاً تکنیکی صورت می‌گیرد، گای وقت هدف خطا می‌شود، گای وقت مشکلات با وجود نیست که انتشارات بگیر خود و به مردم ملکی ما اسب ې رسه کې متسفهم مسین و یره باید بهپدرم کې یکی از جوانبې عواظ ي جنګ اس انتخاب ما نیست یک یک سو یک استباه است انجام مېشه از دشمن و صحت مخلک بر رو هر روز مردم ما شهید مېشم مساجد تخریب مېشم در کندو شما دید برایې جلسه امد بمبارتمان صورت ستن شهیدو زخمي شد مساجد در بخشهای دګر کشور ازبین بورده بمبارتمان صورت ما باید وحشته مقایسه بکنیم حال هم ما بسیار سر ماقف احتیاط حالا هر محاسبه دقیق بکنم جل ماقف به احتیاط پس که ما به همه پاس و س در عمل هم ثابت کری السلام علیکم م ز مجاهد تو سوال می که از منابع شما در هر جای میګیرن هر منطقې ره میګیرېن از ای منابع به اونها میتین یا چرا مستحق همي استن مثلا الکشتو همه چیزهای مردم از بین میرن ما دوای مجید تو سوال میکنم واسه که شما پیروز شید آیا امکان داره که وقتی که بعد از پیروزیتان شما نظام سی او به ملت افغانستان بپرسیم که ملت افغانستان انتخابات بکنن و یک نظام سیاسی مدرن داشته باشن اخیرا به ملت افغانستان بپرسین که یک نظام سیاسی مدرن داشته باشن شو باید بله سوالی <تصالح> از بفرمایید سلام علیکم و سلام میگم اول که کوشښ مې کونم سای بشري خود مې مناطق بسته بس نه باید ېره دشمن دشمن است و جهت مقابل مقابل باشه وه ګفتن اګر منابع دولتي ره ز شو و بایت الماس نمیشه او برای خود دارم مو اصول تقسیم خود داره و دیگر ایگه او بخش از اموال مردم است که باید برناتر مردم استفاده شده شده و نظام ساخته شده و وقت سمید زمانی که اشتغال برایان نسیب دیم شده مردم خواهد رسی رشوه سطانی و غصب و شور و چپاول انشان نخواهد بود مثل که حکومت میبینید همه اموال متعلق مردم خواهد بود و مردم از اون مناطق خوا در موضوع دوم باید بگن که موضوع نظام سیاسی را گفتن اگر ما باید باید تشریح کنیم که نظام سیاسی اسلام را همه میدانند فقه ها و علمای اسلام از نظام سیاسی اسلام دانن ما باید حفظای چندتن از کسی که از تئوری سیاسی بیگانه ها متاثیراتن متاثیران ها کشوری ما را به ایران ها کردن یک بار از کمونیزم متاثر شدن و کشور را به کردن بال دوم از سکولاریسم غربی شوه که پیش اقتدار دانستانوایی که تاریخ خودا بدون تالو و, و, و ربود میکنن از این نظریات باید بگو داریم مردم ما با هم مصالحه نظر ما کی طرف علما فقهای اسلام میدونن که نظام اسلامی اسلام چونه است چون با تشکل باشه ما گردن ما بر شریعت اسلامی و احکام الهی زاده و ان ما نجات کشور خود را مردم خود را و جامعه خودا درین میبینیم که نظام اسلامی واقعا داشته باشیم هم در او تعامل با دنیا هست هم اطمینان با دنیا هست هم انشاءلله به مردم خود ما در منفعت قرار مېږیره هم امنیت تعمین مېشه هم اموال در نف مردم استفاده مېشه هم جلوې دزدي و رشوت و استفاده بعد از بیت المال جلو تمام منافع خود در و هست انشاءلله ما به او پابند هم هستیم متهدهم استیم تشریح ان نظام ره علما و فقرا اسلام انشاءلله می کنه ما به مطمئن. مطمین هستیم بلې السلام علیکم یک خواهش دارم یه سوال دارم که شما در مزرف 18 سال کدام قاچاقبر تریا اعدام ایدام کردین جزا دادین کنم معدن کسی که مادنها رو جزی میکنن سر از دو تخت تاست شما کردین شما و کنم وطن فروشه جزا دادین. شما همین کسایی که زوراور هست بچه بازی می کنن سرقت می کنن قتل می کنن شما دین. ها کنو مملک هده این سلام و شو علیکم ازمار بارشان در جواب بگیم با که اول گفتن در عجز سال مفسیدیم و قاکفورا را ایدام نکن جزا ندادیم اما در موقع قرار ندارم که آلی پشت موکسیدی ساتن چون آنها هم دشمنی کشور ما اصلا با کشتما ما پاکی دارد ایجاد میکنون ولی در درجه ثانوی قرار دارند اکنون ما با کفار دنیا رو بروسیم با نظام رو بروسیم که کشور ما با در در بیگانه ها تا و با زمان میشن کشور شغال رو اجغال کدر به کشور بیگر نیچی وجود ندارد و یک مینت از اجغال کدره بهکوبوم خاکی کشور خود ره ازادي بهبخسم ي ما تحمیل شده بارم هګر امریکایها څوب از افغانستان <تسجن> برایم کې خیر مسله کشور حل مېشه طریقههای مناسب ولې تنونکې جنګ دالم تحمیل شده سرت امریکایها تحمیل شده ناتو امده و افغانان نیستن متعرض استن یورشګر هستن یوشوارګر استن همو معنای دفاعي ر پس به ما مېته و یورشګران ناخا واقعت مېږن جهاد شده الحمدلله همه افغانها صحیح اتحاد استن از بدرشان تا فاریاب و سرابل و تا سریکل و همه کشور در خود میگرد و الحمدلله افغانها باید در این زمان احساس اتحاد و عمبتگی خود را نشان دادن ما مطمئن هستیم به افغانستان هم استقلال در میگرده به مجدمی خود می میتین و هم وحدتی ملی کاملا به معنی آن حفظ می شود چون احداث ما یکی هم افغانها مسلمان استن همه در غم کشور خود هستن همه کشور خود دوست دارن منافعع اولیا خود را دوست دارن ب خاطر منافع اولیا خود همه اقوام متحد استن یک دست هستن یک پاس هستن در خصوص ما بسیار به ه روحیه و با یک فضای برادروار و بسیار سمیمانه همه اقوام وجود دارن که با هم سفه سف و مردمو اهالي عام هم در تمام ولایت از ما حمایت میکنیم و ما ی درد وقتی که جایی نمی‌کنیم و با آینده‌ی افغانستان و بدنه‌ی خود و ستون‌های خود ما اطمینان داریم چون با مفهوم ان کشوری واحد می‌ماند، مستقل میماند زیر یوغ هیچی چیز، قدرت بیرونی و نمیشه مشاع که پایه‌ی بدخای کشور ما هستن، پایه‌ی ملت ما هستن، آنها را ما ضربه می‌دیم، مشترکاً همه ملت ما و و آخر اپشن شون نیست، ازم می‌دینه، نمی‌تونه ما در برابر یورش‌گرها در برابر کسی که قطعا نه ابدال ما و قوم ما را خداینا خط تقسیم نکنه یا خداینا خط استقلال ما را ذره میده ما یگانه قوتی که مدافع استیم و کشور خود منافع و کشور خود و ارزش‌های اسلامی زره کشور با پاسداری می‌کنیم و این ملت خود را از هم اقوام و احشاد پشت خود می‌بینیم همین ازی اگر به وظیفه تن ها نگرد و دست تن و پشت تن ها نwar قوم دیناری است ماز همه متشکراتیم همه خود همه همه را برطف حتر خود و تر پاولوی خود می بینیم و مطمئنیم مجاید صاحب تا او گران مجاید صاحب تا او طول درانواردین کتا سلام او درانوار اوڈنده که اوم مجاید صاحب که اجازمی دو سوال ایرمه چه دیر مهم دی وغیست صاحب و حضور تا اوڈنده که اوم یاو دمریکا متحده ایالات پا افغانستان که دیده پاره نه آغا آغا بیر تا ووزی مگر ده راغلی چې هغه بېرته واوځي مګر د خلکو مقاومت او د ستاسو مقاومت او د ملت مقاومت دوی مجبوره کړي دي چې ولاره ده حل باید پیدا شي هغوی دا غواړي چې چه که چېرته د افغانستان نه نو امریکا د آسیا نه وتلې ده او کله چې د آسیا نه نو اروپا هم د خوشکی د په انزوا کې قرار نیسي آیا تاسو دې ته حاضر استئ د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې. او د افغانستان د ملي قوانینو په چوکاټ کې او د ملي منافعو په چوکاټ کې که دوی اشغال ختم کی. او یواځې په خپل بارکونو او نظامی اډو که پاتې و او ور ورکوي او د هغه مملکت یا د افغانستان قوانین مراتوي دیت ته تاسو حاضر استئ چې که چېرته دوی وغواړي چې افغانستان نه شغال ختم کړي دغه اډې تاسو منئ دا یو دوم سوال مې دا چې د دو دوی ډار چې که چېرته تا طالبان بیرته اسلامي حکومت جوړ کړي دا به په منطقه او سیمه کښې تاثیر وغورځوي ایا تاسو داسې حکومت تازه راسئ چې په هغې نور تنکراتان او نور افغانان په دې شامل وي مننه کوم ورور السلام ته وعلیکم السلام وایم نوبت سره زه کوښښ کوم چې ځواب وایم ورته اول دا موضوع که دې ویل چې امریکایان غواړي چې دلته په آسیا کښې او افغانستان ده وانسان خالق نسي منالا يونيو برداشتول بارم با نون چنین می‌سوزه مردمی که جا بودن نکنن به کشورهای خود خودش ما دیدن که جنگوارها با به شرایط خود بوتن یا در خود یک جایی رفایده کرد. کردن ها ازی بعد میخوان آنان متحب باشن، آنان منصفی و جای توی شرایط خودره و از شرایط ما خود را ما اینون می‌تونیم که قرار است منامی برای توی پاکستانی‌ها یا توی شرایط دیگری جمعیت هر گز می‌اید. اگر اول بتعرس، با پاسختو با ویزا از روی مشروب کار می زندگی دلدگی می تجارت می کارای کارهای مشروعی توسند ولی هیچ که فهم خداینا خدا نمید که ضرر با باشه، زیان با باشه، یا تعدید باشه یا کنم تشکیل باشه با مدیس خوابه، بسرائه دیگه اینه ما یاده نمیتیم و اینه اصلا تصورشم باید حالی نشون بلی، سلام علیکم و علیکم، سلام، مجاهد تاس در مجایز سبت افتاست دانوارو نی اول خو د روژې د مبارهکې میاشت را رسېدو پناسب ټول ته مبارکي و خدای دې دا, دا میاشت افغانستان کښې د د د سلحې او د آرامې او د اشغال د خاتمې میاشتو ګرځئ مجاهد صاب اول خو دغه کوم غرونه او رغونه چې تاسو نن پلي کوئ په افغانستان کښې یو شپې ورځې مونږ هم د کې افتخار او دغه مدرد د هغه نه تاسو څه وایئ او څه تېرېږي په دې کښې نه شته چې افغانستان کې ډېر بد حالت راغلی او د دې حالت هغه ټول اشغال دی چې د اول روسانو دخوانه او بیا وروسته د ناټو و د نورو غربي ملکونو دخوا نه تاسو دې کښې زه نظر غواړم چې دې د ایران آیا تاسو لاس نه ویني او هم د استخباراتو نورو کړی چې غواړي دا جنګ همداسې د داسې وساتي چې نه طالب یې وګټي او نه یې حکومت وګټي دوم سوال په چې څو مخکې ورځېم خبرو چې طالبان یې ونیول مړي شو دا عذاکر متاصفانه و د حکومت عذاکر دي چې هغه حکومت په غم کښې نه دی زموږ خواهش درخواست دا دی اګر کښې زه زمونږ هې هم په کښې نهشته زه په امریکا کښې ناست ورونو چې دغه پلارونه دي بچارهګان تاسو که د دې په احترام ځی دا دنک او به سوال مې دا دی ب د امریکایانو د وتلو نه مخکې مجاهد صاحب مونږ د امریکایانو نه نظام غواړي نه غواړي مونږ څه کوو د خارجیان دي نور دي تاسو خپل صلح او ارامي کولی شو خو زمونږ افغانانو ډار او چې پس د دوی د وتلو نه به مونږ تاسو خپل منځو څنګه سره جوړ شو تاسو یو بن رفغانې تفاهم ته نه یي رسېدلي ایا د دې امکانات پس د هغې نه تاسو <تصفيق> ګورئ یا مخکې بلې لان اول ایران موضو یو تحلیم ده یو نظر ده پې یو اني واقعیتونه دي رښتیا دي معلومات و چې هغه باندې په افغانستان کښې داسې نه ده چې مونږ خدای ن افغانسته د چا په لاس کښې ولوبېږو یا د چا د منافعو هدف افغانستان دمونږ خاوره ده مونږ وایي والګرانو نه او مکلفیت ده تا بل خوا د ایران مسله د امریکې سره د نورو نړۍ یا د نورو هېوادونو هغه د هغو کوټه رابتلې هم نه کش کوو د افغانستان په خاورې ته او مونږ نه غواړو دمونږ په او ز د نیابتي جنګړې دلته تر سره چي دی وا دا هم موږ درک ده او هم انشاءلله دې نه ځان ساتو تا اوسه چې مونږ په مشکلات لرو یا د نورو برخ کې مونږ لرو وجه دا ده چې مونږ خپل استقلال او دغسې غوښتنې من جهات نن نه دي منلې تاسې مثلا وکړي دوهمه مسله دا جنگ وه د وروسته د کاونی یا د که ور او بیا ضایع کېږي موږ اعطمینان چې که چېرې نظامیان دي خبرې ادارې موږ په جنګ کښې مخامخ را شي ووژل شي هغه حالت ده ولې که موږ ته ژوندي پهلاز را شي مونږ هغو او موږ ښه برخورد ور او اکثره وخت هغه خلاص دي البته یو شی چې د هغونه تر لاسه شي نه ځي او بیا دې موږ په مقابل کښې حالت شران د د بیا اي ثاني في قوايكه دي دوكمنت سرا دي اخلاقي اداره التجركه تصبيغي تشا غابير ترادي في دات تزمين بيان او كذاك سي تريد تاريخه برديرك ماصتي تشفيكي يا تزمين دي زوكي او مدیا که چې زه چې مرادي موجود کده عسكر خپلوان یا د انجینری او علماء په سیمه کې سلام کېږي تدوینه چې عسكر بیا له دې ته مګا ورور د مخابله نخښ خو چې یو نو متدی دا وکه وکه نو کوڅه د تنظیمي امور دې ضروري نیو او اولاد کېږي دا مګا ولې باندې کې شنوور کو عسكر په حس کې چې نه درېیمه مسله دا چې وروسته له دېسې امریکایانو اشغال ختم شي افغانان به څرنګ متحد تجربه لري هغه داسې کله افغانستان د جنګ وو داخلي مسایلو ش اوس حالت له هغه نه فرق لري ته دې خلکو ډېر نه ده پام وو تفصیرې هغه افغانستان ته و توپک سره وو متعددې د هر قومندان هم او قوتونه یې لرل امریکې هر قومندانه شخصي شخصي باورونه او قوتونه جوکری کړي و په د قدرت یې ډېرې کوي او هر اوس مجاهد و د کاریاب سره اهدف ې هم خبره یې هم یو ده چې ګورې ټولو شروع او عم ده جه هأذكرنا بجميع مرتبة وشاطر النظام اللي نظامه كمته الشكل ده مختندين ماذا أو خسرين ماذا أو بتعتني نفسك أمثال ذي خبر ذي بيجست ما توجيذي جاء بده خسرين ماذا إذا تبغى بيت فاكر يختلف أفادك أو ده خامونه ودي أكثارنا ما ينقال نمو ك سفوف الكستة ده حقكم خلك ده حقكم ولا مال این چرا بیارتی بزرکی کلم که باید امین مسئله اندونیزی آره مجاید صاحب ما هم سوال داشتم که اونجا خواهد شما دعوت شده بود و میتانیستن به سرعات الاجه از لحاظ دینی اونجا برای مردم شما توضیح کنیم چرا نرافتی شما هم ي پروسههای دیني که از هفده سال بعد در مسائل افغانستان مضوعت پزوره و پیش ره این مارن ي دسیسه امریکاییها است و شما شنیدم که قمندان جنګي امریکا در افغانستان جنرال نیکولسن ګفت کې ما فشارهای مذهبي هم بالای مجاهدین واقع مې ساځېم این بخش از همو پلانها است که دسیسه ساخته شده هم از عربستان یک دسیسه بود خنسا شد و در ر اندونیزیا بود ولې الحمدلله مجاهدین تانست کې اوره ولما را قبرا ما آغاز آقاوند که نروند اگر در افران موکب عشری واسی خود که چیز هست شما باید بداند که مسئله دینی در بانتان حالت ولما دار ما رحبری ما راحتی کنترول ولما تمام ولما در وقت جهاد میکند را نکوند در تحت جهت ما دیده ما موکب ما عفلت یعنی اگر کسی ما را رد میکنه جهاد ما را رد میکنه آنها باید دلیل دیارن انه ولما دیده باید صلاح ولما باید اما لما در قابله شستان در اندونزیان نراند قابله دلایل خود رو به این شرعن ثابت کردن که موجودیت غیر در اونستون درست و اونها حق دارن که باید معلوم ربو کشن حق دارن که با باعت باظمان بکنن حق دارن که باید مریض خود داشته باشن احکام شرعی رو تمسکر بکنن که او آزادی های بیمورد را و همچنان تفحشر عام به سازن به اشاره خوری و فسق و رشوت ایران به سازن زمینه مساعد کنه می جای بود در قابله یعنی روکن. این مسائل نیاز به بحث نداره نیاز به تشریح نداره 10 سالواد. زمانی که ادعای 20 سال آغاز شده، خبر در اصل پیشه علمای یکونی از راهنمای بونسان در تمام جهان مارچینگ میدونه که هیچ علمایی اون موقفی نگرفته و شما شمادید در و علما متفق نشده که علیه ادعای بونسان استفاده بکنن یا خدای بکنه یا علیه موقفی بگیرن چون در سعودی از بلې سوالای برادر ګرفتیم باید یره بګویم کې در مورد تجیه کشور افغانها هم بسیار حساس هستن و همه متفق هستن کې افغانستان ره کسې تجیه کرده نه افغانستان یک است کې ما مثل قوه دفاعي افغانستان ې مثل کې ارزشهای دیني و اسلامي شا همچنان اتحاد وحدت ملي و همچنان تمامیت ارزش هم ما تضمین مې و همه خود مبانستان با هم برادر هستند همه خشار با هم یک هستند و می دانند که کشور خدای نخواست اگر کسی نام که جره جابو برای همه در بران میرند و همه خدای نخواست به یک خود پستی بجار میشند کس راییت کسی نمیخواهند البته یک چند تزار جسد های بیوانه د نداره از نظر نگاه ضعیف است تا یک قوه خارجی نباشه این مملکت به پا استاد نمیشواد ولی شنیدین اونجا چی هست بله آه آه برادر باید بگیم که ما گفتن مگر انقلاب ختم شواخت ختم شما نمایند نظام یسازی کردیم طرنما یاداوار شد مگر اشکال از بین برد که اشکال مانی مانده همه به استفاد برکن شد اگر پیشه توی سیاقیه اگر که استفادیا سوال که و... باید ها ها های علی و است همراه جلوه شهرت ایشان باید خاتیمه پیدا کنند. در زمان که ایغال خاتمه پیدا کرد افغانان افغانها آن استقلال کردن و تنفس کشیدن آن سنت یکم موقع خود را دیگر بسیار آسان است ان شاء با هم برادر هستند و مدار رسات فکری دارند تجربه‌ای که سال حاصل شده و ان ما الله ما کشف بسیار زود ان شاء الله یک انسان متفکر و حدیثی است که همه اخشار ملت ما ترو خود را میبینه و عرض شاهر و دینش هم معافظه شده باشه مطاله که آه گفتم مطاله ایز شاید رویم شایدی بود که اقتصاد نداره ما اقتصاد نداره مروابط ما تا با... با... مر دنیا چه ایز شما دکت که یکی سیاسی جنگ اگر ما در جنگ هستیم مجبور این با غرص صحبت کنیم اگری این بدل شو به احالات سیاسی ما به احالات نرمال رجوع کنیم به حالت نرمال شو ظلم و وسط و خوان درستان و اتفاق درستان و اتفاق درستان شو ما به تمام جهان عمده عم ایت تامولی مشروع است با این جمله هم ام هم اروپا هم آسیا هم همه های دنیا با هم محتاج مثلا مسائل سیاسی شان مشترک است اگر شما که مسائل خبادی تمام دنیا تقریبا با هم و با سر اوانا هیچ زمان نمیخوان خواهند خود که ما کسی به تصادم قرار بگیرن منافع اصطادشان به قطر بفتند شان محدود شود یا ما هم در تبین روی تشید خواهند ایره خوب نفهمیم و ما خواهند ازیادیم که با هم همه تزارات سیاسی مشروعی را داشته باشند ولی اثنان که نمیشه یا کسی ما را یا مردم دوستانی است شک اکنون ما دادنشده تا ما دنیا را بپرامانم یکی زمان کشت یک حرکت یک نهزت است یکی زمان رشد یک حرکت یک نهزت است یک زمان حاصل یک نهزت است اکنون ما در حالتی هستیم که هم رشد کردین انشاءالله و هم در حالتی حاصل هستیم به این ماناستی ما هم تجارب رو با خود طبعا مخانی کاسی و کلی دیره و شاید واقع شده باشه ولی تشبه های بسیار طرحان و اکل شده ما از راه های پیشنرین که شریعت مقدس حکم داده و همچنان منافع کشوری ما در او است و مردونی با درک و فعنیده از مشروعی آزان آنها استفاده میکنه و هم قوانین بسیار ثابت رو باید بسازن که تا جامعه هم آرام و نرمال بسازن هم تزن بسازن که دنیا و ما مشکلات رو انشاءالا انش اشار ساکنه بلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمتالله الله اوس دغه د فراه فعلي حالت کومې حساب ته ورسېده او بوس دغه یو تعداد د لوچکان چې د او اسلامیت په تذکرو کښې نه خراسان کو مونږ ځان ته هېواد جوړوو په دغه باره کښې دوی نظاریه چ د نور دې به پاکلاس ځابونه زنګ مدرته کوم ایران داسې ایرانو د فراه مسله چې خلک سره غټه کوي دا اتبا ده مضوع ایران ن تعلقاتو مسله د ټولو افغانانو د هغه أول شيء بيقول عليه هذا بس من كذا شيء لازم تتفكرها أو نرحم به الموقف في سياق دياركم الموقف فنكس البته في فرا برخه بحرات و بمزار و بدارس و بغشان و نور الهوات لكن كل دي هو صور في التكارتو و لهيت يومها مندي تسير الهوات و جات قلت لي يا مثلا المناظر او شفنا الجامد طول من يركب يعني ده قبل بانه کوي بل بل چای بانه کوي خپله ناکامي او مختورې توزې کوي دې نه مطمین ورکېږي بل داسې د هرات د خراب ولایت پ الحمدلله نه بل خوا ته دښمن د عملیات روان دي اطمینان ته او فرا ښاریانو ته م هم اطمینان ورکوې چې اصب به نه وین واو هلته هم اطمینان کوک چې یو ډېر پ احتحاد په بیا خبره د افغانستان د اولیا ګټو د افغانستان د ملي یو یو ده نوچا به د او د دي چې موضوعات مطرح کوي ته مونږ مخکې مقکاریه ورکړې هم ته اشتباه می کنند. نام هیچ مسجد هم نبودم دیر کدام. مسجد ما شهید کردیم. در کدام جای عام یا جای مکتب ما عمله کردیم. یا اشتباه می کنند. ایلی تقلیوات و دشمن قرار زیفته دیر باید یعنی شما بالای مسجد عمله نمی کنین؟ بالای مکتب؟ نه خیز. نه خیز. نه خیز نه. هیچ مورد نیست و این در اصفات و سیزه نمی تونند. نباید هر ور در مسائل دیگر هم ګوفت مردمه مې ما هېچ کسې نه و دشمن خدا طبعا ما کوشته یم دشمن هس کسې کښې در پهلو امریکا ستاده است وا کوشت نه و دور مجبور ات ې ما در جنګ انهاره مې کوشې ولې مردم هامره هېچ کسن ثابت کرده نهمیتانه خدای نخاسه ما کست کسېره کته دا باید بګویم کې زیاد است به نامې که کسی منصوب مردم هستن که احساساتی و دانش هستن و طبعا وحیطایر که انجام دادن ما نمیخوند تکثیر بکنم تمام مردم آنها را دیدن و مشتردن ولی امارات اطلاعی بانفانیم و از این از آنها بسیار فاتله دارن چون رهبری ما در بسی علماء از علماء ما چیزی که شریعت میگن آنها بسیار تقت میکنن و بسیار تدبی و شعاری پیش میرن و از ملت خود کشف بسیار با اعتماد ملت خداسی بسیار تفاوت هم داره و اعمال شد بشان تفاوت داره و قسم در مساجد یا جا جای جا موضوع سامدات عن جمعشی قادرته اصفت با اعتباط به موانه داره برای مجایس اقراد در اولاد سلام علیکم ستا د سرت واکړ فقط یقینا دا ګرده سوالونه چې دا د دا شل سوالونه شوی دي ګرده تخریشي ګرده بېمعنا ګرده په جمعیتو نظار ستاسې لوی دښمن دی دا خپل ایمان وجدان افغانیت اخلاق ډېر جامې صحبت کوې دا ګرده ستاسو دغه جمعیتو نظار دي ډې که صیف دغه چې کته دې کوي دغه یو نفر وو صخي د سوال کوي چې وایي ته تاسې دغه کوې ډېر بېمعنا سوالي وکړې ناموس مومن باندې راکړه تا درس راکړه زه به مې صاحب امریا پروښدي ستاسې په ناموس تېره کړي کې مومن صاحب ته ادر شو ر ر په سوال جانه شنیدېم باید بهګویم کسې دي علیهما در جنګ در است در حالتې نظامي است ما انهاره نه کوشم کسای ووتن کانتینتال قدیل شد و دروس است در جای زفته شد و دروس نیست که شعار ما نیست که ما در مزدود خود عمله بکنیم جای حمله و جنگ است و ووتن کانتینتال باید موظهر بکنیم که در ووتن کانتینتال با تعداد تشکر. اینم جایت سر دیل تشکر لطف دیوکر دیرمان